سوام باد پدیده های ترک کننده و کوچنده زندگی مترسد قونیه هشت رومه جمادی الول 642 به یک باره از توی کوچه صدای پارس سگ آمد. بلند شدم و روی تشک نشستم. لابد بوی دزدی را شنیدهاند که همین نزدیکی ها وارد خانهی بشود. یا بوی مستی که از کوچه می گذرد. دیگر خواب آرام بر آدمهای با باشرف حرام شده. هر طرف را که نگاه می کنی نوعی رسالت میبینی. مگر قونیه از اول این طور بود. تا همین چند سال پیش این شهر جایی امن بود و اهالیش شریف و پاکدامن بودند. اما مرزی که اسمش سقوط اخلاقی است، با گل و شل و باطلاق فرقی ندارد. از کنارش هم که رد بشوی یا به لباست میچسبد یا توی خودش قرقت میکند. چنان مصیبتیست که فقیر و غنی پیر و جوان نمیشناسد. همه را در مشتش میگیرد. بعد یک دفعه میبینی مثل آتشی که باد همه جا پخشش میکند چهار طرفت را گرفته. این است احوال و شرایط امروز شهرمان. اگر در مدرسه معلم نبودم، وله صبحا پایم را از خانه بیرون نمی گذاشتم. بد روزگاری است. اما مملکت هم انقدرها بی صاحب و بینگهبان نیست. هستند کسانی که منفعت جماعت را بر منفعت خود ترجیح میدهند. و صبح تا شب برای حفظ نظم میکوشند. مثلا برادرزاده خودم بیبرس. خودم و زنم به وجودش افتخار میکنیم. بیبرس و دیگر گزمه ها در این ساعت شب برای آنکه جانیها ها برای خودشان راست راست نگردند برای آنکه ما توی رختخوااب هایمان راحت بخوابیم گشت میزنند سالها پیش که عجل برادرم سر رسید و دنیای فانی را ترک کرد من قیم بیبرس شدم مثل پسر خودم بزرگش کردم زبر و زرنگ و مثل آهن محکم است شش ماه پیش وارد جرگه ها شد چو انداخته اند که اگر من در مدرسه معلم نبودم بیبرس تات سال سیاه نمیتوانست کار پیدا کند دروغ شاخدار بیبرس آنقدر بصیرت و جسارت دارد که وظیفه را به نحو شایسته انجام بدهد اگر میخواست میتوانست سپاهی خوبی بشود اما با آنکه در آتش جنگیدن با دشمنان دینمان به خصوص سلیبی های ملعون میسوخت نه من دوست داشتم از اینجا دور باشد و نه زوجه خواستیم اینجا بماند، ازدواج بکند و سر و سامان بگیرد. وقتش رسیده آشیانه خودش را بسازد. جلوش ایستادم و گفتم، فرزندم، مرد شده ای، قوی و با اراده هستی. به هر چه بخواهی میرسی، اینجا به تو احتیاج داریم. اگر هدفت جهاد کردن است، در این شهر هم خیلی چیزها برای جهاد کردن هست. واقعا هم همینطور است. همین امروز صبح به زنم گفتم زمانه بدی شده خاتون. فساد همه جا را گرفته. هر روز در جایی ای رخ میدهد. خبرهایش میرسد تصادفی نیست اگر مقلها توانستهاند اینقدر فتح و فتوح بکنند اگر مسیحیها توانستهاند ادعاهایشان را اینقدر پیش ببرند اگر دشمنان اسلام توانستهاند شهرها و دهاتمان را قارت بکنند دلیلش همین آدمهاییاند که ریسمان خدا را رها کردهاند در حرف مسلمانند اما احکام اسلام را رعایت نمیکنند. اگر اهالی جایی از راه بدر شوند عیناً به همین حالتی میافتند که ما داریم میافتیم. و انگار راه نجاتی هم نداریم مقولها کفاره گناهانمان هستند به همین دلیل فرستاده شدند. اگر مغول نبودند یا زلزله میشد یا قحطی یا اینکه سیل میآمد باید چند بلای دیگر به سرمان بیاید تا گناهکاران عبرت بگیرند؟ فقط همین مانده که از آسمان سنگ بر سرمان ببارد. با این روال که پیش می رود حتما سنگ هم میبارد اگر به راه قوم بدکار صدوم و عموره برویم، همه از روی زمین پاک میشویم. این صوفیهای فردی و ویری که سرکلهشان پیدا شده، شده اند سرمشق بعضیها. آن هم چه سرمشق مزخرفی. کلمات حرزهی که شایسته مسلمانی نیست، از زبانشان نمیافتد. آن وقت، از دین و ایمان هم دم میزنند. اینها را که میبینم آتش میگیرم. وقتی برای موجه نشان دادن افکار نفرت انگیزشان اسم عزیز پیغمبرمان را بر زبان میآورند، انگار میخواهند جانم را بگیرند. قضیه چه بوده؟ این بوده که حضرت محمد پس از یکی از غزواطشان رو به مردم میکنند و میگویند دیگر جهاد اسخر را به پایان رساندیم. از این به بعد نوبت جهاد اکبر است. اهل تصوف هم با استفاده از این روایت میگویند که دیگر تنها دشمن نفسمان است با کسی نجنگیم. شاید این حرفها به گوش بعضی خوش بیاید. اما وقتی کارد به استخان برسد و کار به جنگ با کافرها و ملحدها بکشد، آن وقت برای ما چه فایده ای دارد. این اهل تصوف کار را به اقره کشاندهاند. میگویند روبرویمان چهار در است. شریعت معرفت، طریقت و حقیقت اینها را پله پله باید پیمود بعضی هایشان هم اضافه میکنند شریعت فقط یک منزل است از آنها میپرسم منزل چه چی چیز است تازه بدون شرم میگویند کسی که به چهارمین در میرسد نیازی به رعایت قواعد اولین در ندارد اهل حق مجبور به پیروی از قواعد شریعت نیستند. بیا و درستش کن. گمان می کنند به مرتبه اعلایی رسیده‌اند. اینطور است؟ مورچه چیست که کل پاچش باشد؟ به نظر آنها شراب خوردن، رقصیدن، ساز نواختن، شعر گفتن، نقاشی کشیدن و امثال اینها از واجبات دینی مهمتر است مدام قرقره می کنند مادامی که در اسلام رتبه وجود ندارد همه حق دارند از راهی که میدانند به خدا برسند این حرفها به نظر بی زرر حتی معصومانه می رسد. اما من میدانم زیر این ای که به خرد مردم می دهند، هدفی موزیانه و خبیسانه دارند میگویند به مراجع دینی گوش ندهید به آنها چه احتیاجی هست در اصل می‌خواهند پنبه ما را بزنند اگر از ها بپرسی میگویند قرآن کریم پر است از تمثیل و اشاره و رمز آیه ها را با حروف ابجد حساب می کنند و دنبال معانی اسرارآمیز میگردند میگویند هر کلمه ای یک معنای ظاهری دارد یک معنای باطنی به همین دلیل هر آیه ای را لایه به لایه حرف به حرف می بینند قافلند نادانند دنبال چه میگردند خدا هیچ فرمودش را پنهان نکرده، آشکارا بیان می کند. آنقدر دنبال اشارتهای نهان و پیام پنهان گشتهاند که عقلشان تباه شده و نمی توانند سخنان آشکار خدا را بفهمند. حتی بعضی هایشان می گویند بنی آدم قرآن ناطق است، از الله، توبه، این چه حرف مفتی است کفر آشکار، تازه این درویش های آواره را دیگر نگو و نپرس، اینها کلهشان پاک خراب است، قلمدری، هیدری، ملامتی، بکتاشی هزار و یک اسم دارند، هزار و یک فرغن، به نظر من بدترینشان همین آواره هستند. از آدمی که نمیتواند یک جا ریشه بدواند چه خیری ممکن است به مردم برسد. کسی که به جایی ندارد و مثل برگی خشک در دست باد به هر سو می رود و به همه جا میگوید خانهام، شریک جرم است که شیطان در بدر دنبالش می‌گردد البته ها هم دست کمی از صوفی ها ندارند چنان غرق تفکر می‌شوند انگار آن عقل محدودشان کفایت می‌کند برای تجسم بیکرانگی کائنات مگر مرق کرچی شماها ها و صوفی ها مثل کاه و کهربایند در این باره حکایتی هم هست روزی فیلسوفی در راه به درویشی برمیخورد هر دو خیلی زود با هم گرم میگیرند مینشینند نشینند و چند روز صحبت می کنند جمله را یکی شروع می کند و دیگری پایانش را می گوید. سرانجام هنگام وداع که می رسد، کسانی که آن دو را چند روز در حال صحبت دیده بودند کنجکف میشون و میپرسند این همه مدت با این شور و اشتیاق چه حرفهایی میزددهند فیلسوف چون این جواب میدهد، صحبت کردیم و فهمیدم هر چیزی را که من میدانم او می بیند. صوفی هم میگوید: صحبت کردیم و فهمیدم هر چیزی را که من می بینم او می داند. پس صوفی قافل گمان می کند می بیند فیلسوف قافل هم گمان می کند می داند حالان که نه او چیزی می داند و نه آن یکی چیزی می بیند. چرا قبول نمی کنند ما انسان ها که موجوداتی ساده محدود و فانی هستیم زورمان به چیزی بیشتر از حد و حدودمان نمیرسد آدمیزات هرقدر هم سعی بکند و دست و پا بزند مثلاً به کجا میرسد حتی به اندازه یک جو هم نمیتواند پیش برود خدای قادر هرچه بر پیشانی ما نوشته همان می شود همین و بس وظیفه ما تفسیر دستورهای پروردگار نیست سعی در فهمشان که اصلا نیست وظیفه مان فقط و فقط مو به مو اجرا کردنشان است بیبرس که به خانه بیاید در این باره با او حرف می زنم دیگر عادتمان شده این صحبت ها. هر شب خسته و کوفته از گشت شبانه که برمیگردد با هم کنار تنور مینشینیم. بیبرس آشی را که زنم پخته قاطق نانش می کند و در همان حال در باره وضع روزگار صحبت می کنیم اشتهایش خوب است هرچه باشد جوان است باید جان و قوه داشته باشد جوانهای شجاع و باشرفی مثل او در این شهر بی خیلی کار هست که باید انجام بدهند. از کافر بگیر تا فاسق. خیلی ها هستند که باید آدمشان کرد.